خانم حسینی سلام وقتت بخیر همیشه به بچه‌ای که 21 دو ساله بودن از بعد 26 سالگی حسادت کردم که چه جوری میشه خدا بهشون توانایی بده که هر روز 8 و بیان سر کار برخلاف حالا روحیاتشون تو اون سن برخلاف چیزهایی که نیاز دارن بهش از تفریح و نمیدونم خوش گرفته تا کافه رفتن و اتفاقات این مدلی من واقعا قبطه میخورم به حال شما که یک آدم انقدر میتونه دقیق مرتب کار بکنه و سر وقت حاضر بشه سر وقت بیاد سر وقت بره اینها همش برای من قابل احترام میخوام بدون که زحماتتون در واحد مالی و قسمت مالیاتی علال خصوص داره دیده میشه امیدوارم که برای هدفهایی که تو الان برایش جنگیدین و در آینده دارین برسین و لذت ببرین از کار کردن در سن پایین و بعدها سمرش رو ببینین برای تو موفقیت میکنم انشالله که شاد باشید.